ای مو ای مو یک جا شوید، یک جا شوید از خاترگی بیرون روید دریا شوید دریا شوید ای مو ای مو یک جا شوید، یک جا شوید از خاترگی بیرون روید دریا شوید دریا شوید ای مومینان ای مومینان یک جا شوید یک جا شوید از خاطرگی برون روید دریا شوید دریا شوید, دریا شوید ای مومینان زمانه دین چه روان بودهیم بول بولانی خوش کوچا با هن بوده ایم ای زمانه دلچه را بول هن بوده ایم بل بلانی خوش زندگی برکامی ما بود از طاف اصنا نبود از شجاعت در جهان شمشری برران بودایم از شجاعت در جهان شمشری برران بودایم ای مومینان ای مومینان یک جا شوید یک جا شوید از خطرگی بیرون روید دریا شوید دریا شوید ای مومینان ای مومنون یک جوشوید یک جوشوید از قطرگی بیرون روید دنیا شوید دریا شوید ای مومنان چرا مقهوری کافیر گشته ایم مازی نسلی حیدرو فاروق عثمان بوده ایم ای مومنان چرا مقهوری کافیر گشته ایم مازی نسلی حیدارو فرو پس من بود دائم روی دنیار ام رفتم دنیارمی ماه یک تازی دول دولی اقلیمی ایمان بود دائم یک تازی دول دولی اقلیمی ایمان بود دائم ایم ای <تصفيق> هست چیز برادرها همین چیزی که در اطراف هر یکی بای شما را احاطه کردگی است پدر و مادر، فرزن، برادر، زن، خشتبار، مال، تجارت، خانه همین هست چیز اگر برای شما از این سه چیز محبوب شد شما فاسق است. الله قوم فاسق را هدایت نمی‌کند. یعنی yani, ایمان ما تا این که الله و رسولش را از همه چیز دنیا حتی از جان خود زیاد ندید، او ایمان ایمان کامل نیست. عمر رضی الله عنه یک روز به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: یا رسول الله من از هر چیز زیاد دوست دارم. از پدرم از مادرم از زنم از بچم از مالم فقط جان من نفسی من برای من شیرین‌تر است. رسول الله گفت: ای عمر ایمان تو کامل نشده است. الله میگه که باید که تو از جانت هم من زیاد دوست داشته دو. شرا النبی اولى بالمؤمنين من انفسهم نبي محمد علیه السلام برای مؤمنان از نفسشون آما بود عمر فکر کن رسول الله جان اگر جان می‌دادم همشه در راه شما قربان رسول الله صلی الله علیه عمر حاضر حاضر ایمان ما الله دریا شوید ای مومنان یک جا یک جا شوید از خاطرگی بیرون روید دریا شوید دریا شوید ما اگر امروزاره در درد دل دی فتیحانی روم و مصرو ملک ایران بوده ایم ما اگر امروزاریم در دین دیروزیان و زیان ومو روم و مصرو ملکی ایران بوده ایم از اسلامی مسلمانان فقط نام به جاست دل خوشم این کی از ده جدی مسلمان بودیم دل خوشم این از ده جدی مسلمان بودیم ای مومینان ای مومینان یک جا شوید یک جا شوید از قاترگی بیرون روید در یأ شوید در شوید ای مومینان ای مؤمنان یک جا شوید یک جا شوید از قاترگی بیرون روید در یأ شوید در شوید